دستان، موش و دوستانش در نقطه ای از یک جنگل درخت شالمالی بزرگی بود که روی اون کلاقی به نام لاک زندگی می کرد. یک روز لاک همینطور که در لونش نشسته بود مردی رو پای درخت دید مرد تور و اسایی در دست داشت و قیافش خیلی وحشتناک بود او کمی بعد تور رو روی زمین پهن کرد مقداری برنج روش پاشید و خودش رو قایم کرد درست در همون لحظه سرکرده کبوتران که اسمش چیتراگریوا بود در حالی که در آسمان چرخ میزد و صدها کبوتر او رو بر گرفته بودند به اونجا رسید همین که برنجها رو دید به هوای غذا به دام افتاد و با همراهانش در پیچ و خم تور گرفتار شدند. چیت را که اونا را از دام دید به پیروانش گفت تور رو با نوکتون بگیرید و با سرعت تمام در هوا پرواز کنید همه اونا گفتن چشم این کار را خواهیم کرد و تور رو برداشتند و به سرعت پرواز کردند و از بس که ترسیده بودند همیطور که در آسمان پرواز میکردند و رفتند و رفتند بعد شکارچی بلند شد و پیش اومد و با ناراحتی به آسمان نگاه کرد در این هنگام چیترا گریوا بدون ترس و واهمه به یارانش گفت بیایید هرچه سریعتر پیش دوستم هیرانیاکای موش بریم و این بندها رو پاره میکنه و ما رو نجات میده با گفتن این حرفها همراه با پیروانش که تور رو میکشیدند رفتند و رفتند تا به سوراخ موش رسیدند و از آسمان فرود اومدند. سرد کرده کبوترا اینطوری موش رو فراخون. آهای ایرانیاکای بزرگوار، بیرون بیا. من اومدم، چیترا گریوا. موش که اینا شنید از لای در نگاه کرد و دید که دوستش اومده. بعد از لونهش که صد تا سوراخ داشت بیرون اومد. موش مهربان بعد از اینکه درباره موضوع پرس و جو کرد، با شوق تمام بندهای سرکرده ی کبوتران و پیروانش را از هم باز کرد. بعد چیترا از موش به خاطر اون که دام رو گسسته بود با واجه های تشکر کرد و سپس به آسمان پرواز کرد و با پیروانش از اونجا رفت. لاکه و پاتین کلاغ هم که همراه اونا اومده بود و همه اینا رو دیده بود به در لونه موش نزدیک شد و به او که به سوراخش برگشته بود چنین گفت من لاکه و پاتین دوستی لطیف و مهربانیت رو دیدم و تو رو که میتونی در یه چونین بدبختی نجات دهنده باشی به رفاقت انتخاب میکنم موش وقتی اینو شنید و از درون سوراخ خود کلاغ و دید گفت برو گمشو بین خورنده و خوراک چه دوستی میتونه وجود داشته باشه؟ کلاغ جواب داد درود بر تو اگه قرار باشه تو رو بخورم تنها لحظه ای لذت نصیبم میشه در حالی که اگه دوستم باشی مادامل عمر جونت در امان خواهد بود. و اینچنین گفت و با قسم و آیه اعتماد رو در دل موش دمید و باهاش دوست شد. موش بیرون اومد و در حالی که تکه های گوشت و دونه های برنج هم با خودش آورده بود هر دو به شادمانی با هم به خوردنش پرداختند. بعد روزی کلاق به رفیقش موش گفت دوست من. رودخانه ای هست که از میانه جنگلی نه چندان دور از اینجا میگذره یکی از دوستان من لاک به نام من در اونجا زندگی میکنه من پیش او میرم چون اونجا گوشت و غذا راحتی به دست میاد اینجا غذا پیدا کردن خیلی سخته و من همیشه با وحشت از شکارچیان زندگی میکنم موش در پاسخ به پیشنهاد کلاق گفت پس بیا با هم زندگی کنیم، منو به اونجا ببرد چون منم از این مکان بدم میاد، اما دلیلش رو وقتی به اونجا رسیدیم برات میگم. لاک با این سخنان، هیرانیاکا رو به منقارش گرفت و پرواز کنن به ساحل رودخانه جنگلی رسید و بعد از دیدار با دوستش منساراکا که از اونها به گرمی پذیرایی کرد، با موش در اونجا موند. بعد کلاق در میان قصه هایی که برای لاک گفت علت اومدنش رو بازگو کرد و گفت که چطور دوستیش با هیرانیاکا پا گرفته آنگاه لاک هم مثل کلاق با موش دوست شد و از او دلیل نفرتش رو از وطنش پرسید در این هنگام همچنان که کلاق و لاکپشت به سخنان هیرانیاکا گوش می دادند، او داستانش رو اینجوری درباره خودش تعریف کرد وقتی در سوراخی بزرگ کنار شهر زندگی می کردم یه شب بندی رو از قصر شاه رو بودم و اون رو توی لونه پنهان کردم در نتیجه نگاه کردن به اون بند که خواست جادویی داشت قدرت بسیاری پیدا کردم و از اونجا که این قدرت رو پیدا کرده بودم که به خوبی خوراک پیدا کنم موشها رو برم رو گرفتند در گذار زمان زاهدی پارسا به اونجا اومد و نزدیک لونه من کلبه ای ساخت. او با نظورات روزگار میگذرند و شبهنگام وقتی غذاش رو میخورد بازماندش رو در کاسه گداش میریخت و در جایی دور از دسترس میگذاشت به این خیال که صبح روز بعد دوباره اونو بخوره. اما وقتی خواب بود من از سوراخی وارد میشدم و بالا میجهیدم و بازمونده های غذاش رو تا اون که یه روز زاهدی آواره و دورگرد که دوستش بود به اونجا اومد و وقتی غذا خوردن در طول شب به گفتن و شنیدن داستان پرداختند وقتی که رفتم غذا رو بیارم مرد گدا که صدام رو شنید کاسش رو با یه ترکه شکسته به صدا در آورد زاهد دورگرد پرسید از این کار چی آیدت میشه؟ زاهد دومی گفت سر و یه دشمن من پیدا شده با اون که رو در جای خیلی بلندی میذارم یه موش به بالا میجهه و اون از من میدزده و بنابراین من با زدن ترکه به ظرف غذا او رو میترسونم. زاهد دورگرد در پاسخ به حرفاش گفت هرس در واقع مایه تباهی موجودات میشه حالا داستانی رو بشنو که این نکته رو بیان میکنه. در جایی از یه جنگل شکارچی بعد از شکار کمان خودکاری کار گذاشت و کمی گوشت روی اون گذاشت و به دنبال یک گراز وحشی دوید هر چند گراز را با تیر زد اما گراز هم بهش حمله کرد و او را به شدت زخمی کرد چنان که در اثر زخم و ضربه مرد شغالی که همه این ماجرار را از دور می دید جلو اومد و با آنکه که به شدت گرسنه بود تصمیم گرفت گوشت شکارچی و گراز رو ذخیره کنه. بنابراین از اون همه گوشت چیزی نخورد و به راه افتاد و رفت که اونچه رو که بر کمان بود بخوره. اما ناگهان تیری از کمان خودکار جهید و بهش اصابت کرد و او رو کشت. پس میبینی که هرس مایه لذت بیشتر نمیشه بلکه تنها بدبختی به بار میاره و در ادامه گفت اگه بیلی در اینجا داری به من بده تا جلوی بلاهایی را که موش به سر تو میاره اونطور که باید بگیرم هنگامی که راهب مقیم در اون محل اینو شنید بیل کوچکی به او داد و من وقتی از نقطه‌ای که در اون پنهان شده بودم ماجرار رو دیدم وارد سوراخم شدم بعد اون همون اون مسافر، با دیدن سوراخ گذرگاهی که بلونه من میرفت، رفت تصمیم گرفت اونو با بیل بکنه همینطور که من اونجا خودم و عقبتر می کشیدم اون می کند تا بالاخره به جایی رسید که گردنبند و همچنین تمام گنجین من اونجا بود اون وقت شنیدم که به ظاهد مقیم اونجا گفت این موش قدرت فراوانش رو از عظمت این گردنبند به دست دستاورده و بعد از اون که تمام دور و ندار منو گرفتن و گردن بند رو کنار سرشون گذاشتند چنان از خودشون خوششون اومده بود که خوابشون برد همینطور که اونا خواب بودن من باز برای برگردوندن گردن بند بیرون رفتم اما زاهد ساکن در اونجا بیدار شد و منو گرفت و با چوب دستش زربهی به سرم زد با اون که مجروح شدم ولی به یاری بخت نمردم بلکه به سوراخم برگشتم با این همه دیگه قدرت پریدن و جهیدن برای یافتن غذا نداشتم. ثروت آدمیان جوانی شونه و در طلب اون پیر میشن و نشاط، قدرت، زیبایی و سخت‌کوشی خودشونو از دست میدن. بنابر این پیروان من که موشهای هم قطارم بودن وقتی فهمیدن که دیگه فقط از عهده تهیه غذا برای خودم برمیام منو رها کردن و رفتند. درست همانطور که خدمتکاران ارباب بیپول پول اونو باقی میذارن و میرن زنبوران درخت بیگل رو رها میکنند و قوحا دریاچه بی آب رو با اونکه مدت طولانی اونجا زندگی کردند به همین جهت ای شریف ترین جهان چون مدتها در فقر به سر بردم با لاک و دوست شدم و هر دو خدمت شما رسیدیم هیرانیاکا اینو گفت و منساراکای لاک پشت گفت اینجا رو خونه خودتون بدونید ای دوستان برای خود درد سر و نگرانی درست نکنید هیچ جای جهان برای یه فرد شایسته بیگانه برای کسی که خورسنده ناخورسند کننده و برای کسی که مصمم و استواره بدبختی به شمار نمیاد در عین حال برای کسی که میگوشه همه چیز به دست نیامدنی نیست همچنان که لاک پشت اینا رو میگفت آهویی به نام چیت رو که شکارچیان که ترسونده بودند. از نقطه دوری در جنگل به اونجا رسید، وقتی که لاک پشت و دیگران او رو دیدند و فهمیدند که دیگه شکارچی دنبالش نمیاد او رو آروم کردند و دلداریش دادند و باهاش دوست شدند. بعد همهی اونا یعنی کلاق، لاک پشت آهو و موش دوستانه با هم زندگی کردند و با کمک به هم دیگه خوش و خوررم در اونجا موندند. با این همه روزی لاک و پاتین که میخواست ببینه چرا را دیر کرده؟ روی درختی فرود اومد و تمام جنگل رو زیر نظر گرفت و چیترانگا رو دید که در ساحل رودخانه به دامی مرگبار گرفتار شده کلاق فرود اومد و موضوع رو به لاکپشت و موش گفت پس از مشورت با همدیگه لاک هوپاتین هیرانیاکای موش رو به منقار گرفت و او رو به همون محلی که چیترانگا بود برد هیرانیاکای موش به نجات آهو که گرفتار دام شده بود شتافت و با جویدن بندها و بریدن اونا او را آزاد کرد در این میان منساراکای لاک پشت به دلیل علاقه به دوستش از رودخانه گذشت و به این طرف اومد و خود را تا کرانه رود نزدیک جایی که دوستاش بودند بالا کشید در اون لحظه شکارچی که دام گذاشته بود ناگهانی و غیر منتظر سر رسید و همینطور که آهو و دیگران میگریختند تورش رو روی لاک پشت انداخت و اسیرش کرد اما همونطور که میرفت و از فقدان آهو نراحت بود، موش که با تیزبینی خودش همه چیزو زیر نظر گرفته بود، به آهو دستور داد که می راه بره و سپس خودشو بندازه و وانمود کنه که مرده. کلوق روی سر آهو نشست و وانمود کرد که داره به چشماش نوک میزنه. شکارچی که اینو دید فکر کرد آهو مرده و بنابراین فوراً به سمتش دوید و لاک پشت رو با کیسه‌ای که توش بود در ساحل رود رها کرد. مشکه دید شکارچی داره میدوه رفت و توری رو که دور لاک بود جوید و لاکپشت که حالا آزاد شده بود به درون آب جست و فرار کرد. آهو هم تا دید که شکارچی داره نزدیک میشه برخواست و فرار کرد. در این هنگام کلاخ هم به بالای درخت پرید. وقتی شکارچی برگشت و دید که لاک هم از دام جویده شدش فرار کرده نالب و زاری کنن به خونه برگشت. چون میدونست حیوانی که از ترس فرار کرده باشه دیگه به چنگش نمیاد بعد لاک پشت و دیگران با شادی بسیار در اونجا گرده هم اومدند و آهو از سر سپاسگزاری به لاک پشت و اون دو نفر دیگه گفت من واقعا خوشبختم که دوستانی مثل شما پیدا کردم چون امروز بدون اینکه شما به فکر جون خودتون باشین منو از مرگ نجات دادین و بعد از اون به زندگی و همزیستی شادمانه با کلاخ، لاکپشت و موش ادامه داد و همه اونا از دوستی با همدیگه لذت بردند. این بود داستان قشنگ ما